آن روز بعد از ظهر بعد از پیاده شدن از مترو وارد داروخانه ای شدم نسخهی درمانگاه را نشان دادم و پرسیدم چطور باید پانسمان ها را عوض کنم فروشنده خواست علت زخمی شدنم را بداند وقتی برایش توضیح دادم که با ماشین تصادف کردم و نقش بر زمین شده گفت امیدوارم شکایت کرده باشین دوباره تاکید کرد حالا شکایت کردین جرعت نکردم کاغذی را که در درمانگاه می را با امضا کرده بودم نشانش دهم ده برگه عجیبی به نظر می رسید خیال داشتم دوباره با حوصله توی اتاقم به خانمش لحظه ای که می خواستم از داروخانه بیرون بروم گفت یادتون نره کربار اربار با مرکور کوروم زد و وقتی برگشتم هتل راهنمای تلفن زنگ زدم تا شماره یه ژاکین گسرژان ساکن میدان آلبانی را بپرسم. اسم چنین کسی توی فهرست شماره آن میدان وجود نداشت. اتاقم را کوچکتر از همیشه میدیدم. انگار بعد از سالها قیبت غیبت برگشته بودم یا در زندگی قبلیم درش سکونت کرده بودم. یعنی ممکن بود تصادف شب، چنان شکافی در زندگیم ایجاد کرده باشد که پس از آن یک قبل وجود داشته باشد و یک بعد اسکناس های بانکی را شمردم هیچ وقت آنقدر ثروتمند نبودم تا مدتی از دویدن های فرسا در پاریس برای خریدن چیزی از یک کتابفروشی و فروختنش به کتابفروشی دیگری با سود ناچیز راحت می شدم که پایم درد می کرد. نداشتم پانسمان را عوض کنم. روی تخت دراز کشیدم دستها را پشت سرم غلاب کردم و سعی کردم به گذشته فکر کنم. به این کار عادت نداشتم. مدت بود به خودم فشار می آوردم که کودکیم را فراموش کنم و هیچ وقت دلم برایش تنگ نشود. از این دوران هیچ عکسی نداشتم و هیچ اثر موسی هم از آن باقی نمانده بود جز یک دفترچه کهنه واکسیناسیون. بله وقتی خوب فکر میکردم ماجرای بیرون آمدن از مدرسه وانه و خواهرهای روحانی بین بیاریتز و جوان جوزا قرار میگرفت پس تقریبا شش ساله بودم بعد از جوان جوزا پاریس بود و مدرسه محله خیابان پندولادی بعد مدرسه های شبانه روزی مختلف و پادگان های سراسر سر فرانسه سنلو، اوتسوا، بردو، متس و دوباره پاریس. تا امروز در کل تنها راز زندگیم تنها حلقهی که به حلقه های دیگر وصل نبود همان اولین تصادف با بانت بود و آن زن یا دختر جوانی که دیر کرده بود چون ماشینش خراب شده بود و از پاریس می آمد یک شب دیگر در میدان پیارامید لازم بود تا این ماجرای فراموش شده دوباره از اعماق بالا بیاید دکتر بویر در این باره چه فکری میکرد؟ آیا می توی جلسه بعدی دانفر رو از این مثال کنار نمونه های بسیار دیگر برای اثبات موضوع تکرار ابدی استفاده کند ولی موضوع فقط این نبود فکر می کردم در زندگیم روزنه ای به افقی ناشناخته باز شده است بلند شدم و از روی بالاترین طبقه گنجه جعبه مغوای آبیرنگی را که همه مدارک اثبات کننده ی حضورم روی زمین را تویش چیده بودم برداشتم خلاصه تولدم که از شهرداری بولونیه بیانکور برای گذرنامه گرفته بودم، یک مدرک از آکادمی گرونوبل که ثابت میکرد دیپلمم را گرفتم، کارت عضویت در انجمن حمایت از حیوانات، سند تعمیدم که توی دفترچه سربازیم بود و در کلیسای سن مارتن بیاریتس تنظیمش کرده بودند و دفترچه واکسیناسیون بازش کردم و برای اولین بار نگاهی به لیست واکسنها و تاریخشان انداختم یکی از آنها در بیاریتس و توسط دکتری به نام والات تزریخ شده بود شش ماه بعد واکسن دیگری در مرکز فسومرون رون در لوار شر با مهر دکتری به اسم دیوار پس از آن یکی دیگر سالها بعد در پاریس نشانه را پیدا کرده بودم یا سوزنی بود که هیچ وقت در انبار کاه پیدا نمی شود. یا شانس می آوردم و سر نخی می شد که به کمکش زمان را برمیگرداندم. دکتر دیوار فسامرون لفاره بعد گزارش تصادفی را که مخورمایی چهارشانه موقع بیرون آمدن از درمانگاه به من داد و یک نسخش را پیش خودش نگه داشت دوباره خواندم آن موقع متوجه نشده بودم گزارش به اسم خودم نوشته و با این جمله شروع شده من امضا کننده زیر عباراتی به کار رفته اینطور طور نشان میدادند که خودم مسئول تصادف بودم هنگام عبور از میدان پیرامید به کنکورد کنار تاغهای های هلالی و خیابان ریوولی. به اتومبیل فیات سبز چمنی به شماره سیدو دوازده افیکس هفتادو پنج توجه نکردم راننده دوشیزه جکلین بوسرجان سعی کرد با من برخورد نکند طوری که اتومبیل به یکی از تاخهای هلالی میدان خورد بله بدون شک درست بود سرعت ماشین زیاد نبود؟ و باید قبل از رد شدن سمت چپم را نگاه می کردم ولی آن شب از خود بیخود بودم. شاکلین بوسرشان راهنمای تلفن اعلام کرده بود کسی به این اسم در میدان آلبانی وجود ندارد. به این دلیل که اسمش در فهرست مشترکان تلفن ثبت نشده بود. پرسیده بودم در این میدان چند شماره وجود دارد؟ 13 با کمی تحمل، بالاخره شمارش را پیدا می کردم. کمی بعد از اتاقم بیرون رفتم و دوباره به راهنمای تلفن زنگ زدم. هیچ دکتر دیواری در فسبرون لافره وجود نداشت. لنگلنگان تا کتاب پروشی کوچک ابتدای بلوار ژرددان رفتم از آنجا نقشه لوارشر را خریدم برگشتم و راهی کافه بابل شدم پایم درد می کرد. پشت یکی از میزهای تراس شیشه ای نشستم. وقتی به ساعت دیواری نگاه کردم و دیدم تازه ساعت هفت شب است تعجب کردم و به خاطر رفتن هلدن نواشین حسابی افسوس خوردم. میخواستم با کسی حرف بزنم. باید به ساختمان جنوی و داام که کمی آن طرفتر بود میرفتم؟ ولی با خودم فکر کردم. اگر دکتر بویر هنوز به پیگال نرفته باشد حتما جنوی و همراهش است. باید به مردم اجازه داد زندگیشان را بکنند البته قصد نداشتم بی خبر زنگ خانهش را بزنم بنابراین نقشه را باز کردم و مدت زیادی دنبال پسومبرون گشتم کار سرگرم ای بود و باعث می شد تنهاییم را فراموش کنم میدان آلبانی به صبرون کم کم داشتم از مطلب بسیار مهمی درباره خودم سر در میآوردم که شاید جریان زندگیام را تغییر میداد